بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بخشندهی مهربانی الهافو هر حرس افزونی در مال و سربست شما را از آخرت غافل گرسانی حتی زورتو المقادر تا اینکه که قبلها را زیده کل کلا سوف تعلمون نخیف کنین نیست بزودی حقیقت سا خواهید دانست ثم کلا سوف تعلمون نخیف باز هم کنین نیست بزودی حقیقت سا خواهید دانست کلا لو تعلمون علما یقید نخیر اگر علم یقین را دا می دانستید این ربش را اخیار نمی کردید لترونن جحیم یقینا آتش دلتخ را می بینید ثم لتروننها عین یقین سپس آن را با این یقین مشاهده خواهید کرد ثم ما در تسالني يومئذ همه شما از نعمت هایی که داشته اید تا آن شد